در صفحه 121 بهار جل 52 بهار حدیث شماره 20 از امار است که او هم یکی از اصحاب جالب امام صادق علیه السلامه یه قلط لعبی عبدالله علیه السلام به امام صادق ارز کردم العباده مال امام منکم المستطرف سر فی دولت الباطل افزل عمل عباده فی ظهور الحق و دولتهی مال امام ظاهر منکم چه سوالی کرده عبادت با امامی از شماها مخفیانه و پنهانی در زمان یک دولت باطل این بالاتر است یا عبادت در زمانی که حق ظاهر شده و دولت آشکار است با امامی از شماها که ظاهره کدوم بالاتره الان به ذهن شما چی میاد فقال یا عمار از صدقه فی سر و الله افضل من از صدقه فی صدقه یوشکی پنهانی دادن از صدقه آشکارا دادن خیلی بالاتره و کذالک عبادت کم همینطور عبادت شما خیلی حرف عجیبا ببینید نگرشی که امام صادق داره و امار صاباتی میده و کذالک عبادت کم فسر مع امام کم المستتر فی دولت الباطل افضل لخوف کم من عدو بکم فی دولت الباطل به خاطر اینکه شما در دولت دولت باطل بودید، خائب بودید، نگران بودید، اما برای اینکه توجه به امام علیه السلام داشته باشید، این توجه داشتن بد نیست اینو برای دوستان جوونترم بگم. همین خب دو هفته قبل بود دیگه میدونید من از سفر برگشتم. تو فرودگاه لس آنجلس بودیم. روز یازده سپتامبر بود. یازده سپتامبر دیگه میدونید. عجیگ با فرودگاه ها و معمورین گشته بودند. من هم سخنرانی داشتم در نیویورک بعد از دو ساجلس میدم نیویورک خودم و برتوننم با آن سخنرانی اکثر دوستان می یکی یه که درست سفر تو عقب بنداز برای اینکه تو فرودگاه اووزاش ناجوره ماهام به عنوان مسلمون و همراه من هم زن چادری و قیاپ های این چنانی و یرببا آقا ما نگرانیم همه گفتم من قول دادم جلسه هست انشاالله آم زمانمان عنایت میکنن ساعت پرواز مامجوری بود که اگه نماز تو فرودگاه نمیخندیم مشکل داشتیم تا بر رسیم شش ساعت با اواپما. سفر رسمی تا نیویورک ما سه نفری من و دو تا چادری با من تو فرودگاه سجادهمون رو پن کردیم نماز بخونیم خدای من شاهده هر ستاییمون این تو ذهنمون گذشت وقتی نمازمون تموم شد با هم صحبت کردیم دیدیم هر ستایی همین رو میگن گفتیم ما با این شرایط تو کشوری که داد میزنن دموکراسی همه آزادن کسی کاری به کسی نداره ظاهرم کاری به من نداشتن ما آزاد بودیم و گوشه جان نمازمون رو بند کنیم نمازمون رو بخونیم بعد بریم هواپیما سوار بشیم ولی صادقانه بگیم هممون نگرون بودیم یا نه؟ الان بیان بگیرن دستگیرمون بکنن چیزی به ما بچسبونن همون تروریست و غیره که به مسلمین میچسبونن به ما بچسبونن حق پرواز تخیر بیفته کارای دیگه بشه به جلسه نرسیم گفتیم با این شرایط یه نماز خوندن تو این جنب با این خوف برای ما صورت گرفت و كذلك عبادت کنفسر امامكم کن مستتر فی دولت الباطل افضل لخوفک من ادوب و کنفی دولت الباطل تا اونجا که من من فی ظهور الحق مع الامام ظاهر فی دولت الحق ولیس العباد الخوف دولت الباطل مثل الاباده مع امن فی دولت الحق اینا قابل مقایسته نیست اینا روشن شد ادامهش اعلم ان من منکم سلاتا فریزت وحدانا مستطررن به ها من ادوهی في وقتها فعتمها كتب الله عز وجل له به ها خمس و عشرین سلاتا فریزتا نماز واجبش را بخاند در زمانی که نگرانی هست دشمن حاکمه با یه جبه خطرناک داره مستتر میکنه کنه رو غیره و غیره خداوند سواب بیست و پنج نماز واجب را که در حالت عادی کنده بش میده پس میشه می افضل همه این که زدیم افضل اینجا حتی امام داره به صورت جزئی بیان میکنه و من سلامن کم سلاطن نافل فی وقتها فاتم مها کتب الله عز وجل لهو به ها اش نوافل اگر یه نماز مستحبی رو در این شرایط بخاند خداوند ثواب ده تا نمازی را که در غیر اون شرایط در حالت آسایش و آرامش میخواسته بخونه بهش انایت میکنه و من عمل من کم حسنه کسی در این دوران یک عمل خوب انجام بدهد. كتب الله له بها اشرین حسنه خدا 20 تا ثواب براش در نظر میگیره و يزاح الله تعالى حسنات المؤمن منكم اذا احسن اعمال الى آخر تا اینجا میاد میرسه قلتو جالت فدا قد رقبت نصف العمل و اسستني عليه ولكن يهب أن اعلم كيف سرنا نحن اليوم افضل الاعمال من اصحاب الامام منكم از ظاهر في دولت الحق و نحن و هم على دین واحد و هو دين الله عز وجل سالمی میشه میگه آقا این بیانی که شما فرمودید عجیب در ما رقبت در عمل ایجاد کردید پس در دوران طیبه امام نیست، در حجابه اعمالمون انجام بدیم، توجه داشته باشیم، اگه خوب نماز رو کنیم خوب روزه بگیریم، خوب از واجبون انجام بدیم، جالبه نماز رو فرمودن، واجب، مستحب فرمودن، حسنه رم فرمودن. یعنی فکر نکنید فقط در یه چیزای جزئیه، کارای خوب، اونچه که وظیفه دارید، اینا رو در ما تحریک کردید، تحریس کردید، در ما عشق به ایجاد کردید، اما ما دوست داریم امام ظاهر را، دولت ظاهرش هم ببینیم، زمان رو هم درک کنیم. پس این چگونه میشود؟ فقال أن تكون سبقتمهم إلى الدخول في دين الله وإلى الصلاة والصوم والحج و وإلى كل فقه وخير وإلى عبادة الله سرا من عدوكم مع الإمام المستطر مطيعون له صابرون معه منتظرون لدولت الحق خائفون على و وعلى أنفسكم من الملوك تنظرون الى حق إمامكم وحقكم في عيد الزلمه قد منعوكم ذلك واذتروكم الى جذب الدنيا وطلب المعاش مع الصبر على دينكم وعبادتكم ربكم والخوف من عدوكم فبذلك ضاعف الله اعمالكم و حنی ان لکم آ البته ادامهش رو باز گوش کنید. سری رد میشم دیگه نمیرسم فرمود شما این کار رو بکنید، شما این عباداتو انجام بدید، به نمازتون به حجتون، به چیتون در زمانی هم که دولت عب روی کار نیست، اون خوفایی که داری به خاطر زلمه شما از حق باز نمیمونی، اینا رو توجه داشته باشید، اون صبری که میکنید، اون توجهی که به ظهور حضرت داری، اینا برای شما به گونه ای میشود که خداوند ارزش اعمال شما را مضاعف قرار میدهد. اونگونه مزاعفی که امام صادق داره به امار می حنی حنیعن لکن با نوش این اجرها که شما می توانید بفرید و قلت تو جایت فداک به حضرت عرض کردم نتمن نائزن ان نکونم این اصحاب لقب حضرت آخه من دوست دارم از اصحاب از حضرت باشم در کنار حضرت باشم فی ظهور الحق و فی ظهور الحق و نحنا علیون فی امامتک و طاعتک افضل و اعمالا من اصحاب دولت الحق میگه من دوست دارم با امام باشم در امامت شما هستم در دولت شما هستم اما دوست میدارم در دولت امام علیه السلام باشم برای اقام فقال سبحان الله اما تحبون آیا دوست نمیداری ان زهر الله وجل الحق و في البلاد و یحسن حال آمت الناس دوست نداری که خداوند. به وسیله او همه بلاد را از ارزش ها پر کند و عامه مردم به این مقام و یجمع الله الکلمه و یعلف بین القلوب المختلفه ولا یعصلافی عرضه دوست نداری در عرض خدا هیچ که محصیت نکنه؟ دوست نداری در زمین خدا همه به این ارزش ها برسن؟ پس دو دوتا چی میشه؟ اگر امام تشفی نیاوردن در پس پرده غیبت بودن بهانه ندارید میتونید بهونه عمل کنید مثل اصحاب زمان امام زمان بشید راه باز گذاشتن برای ما امکان این رو قرار دادن این روایت داره میگه سنت معصومین میگه اما توجه داشته باشید شما در دوران غیبت میتونید گلیم خودتون رو از آب بکشید بیرون ولی اگر میخواید همه مردم به این ارزش ها برسن آرزوی ظهور بکنید تمنی ظهور بکنید التماس ظهور بکنید که تمنی ظهور هست فقط لفظی نیست یعنی آماده بشید مردم را آماده کنید